علیقدر مادت خود هم شهادت بده ها. اگر الا دیروز قایرو خوندین برای شما شهادت دادن اگر گود میتونه شهادت بده حق گفتن ها اما بهترین است که اگر کسی دیگر هست اونجا اینها شاهد نباشه اگر شاهد دیگر وجود دارد اون نفر بعد گواهی میدهند یعنی اگر گناهی از والدین سرزل خاص حقیقت را بگوید اینجا چیکار کنه گناه در گناه اجاز شهادت شما ندارید این در حق و ناس هست که میگه شهادت بده اگر کسی گناه کرد و اون گناهش در مورد حق الله بوده وظیفه شما است باید گناه را پوشیده کنید مخفی نگه دارید گناه را به جای شهادت ده. حتی اگر زنا کرد بهترین است اونجا مخفی نگه دارید به کسی نگید پرده پوش باشی و اسرار مردم را فاش نکنید این وظیفه اول هست. مگر اینکه خیلی استراری اونجا در گناها بر علیف در ماده هرگز جائز نیست که گواهی کسی بیده هرده حتی لیمکن باید گناها رو مخفی بکنید